که اولین پادشایی که با حافظ بود شاه شیخ خبو اصحاق شاه شیخ خبو اصحاق این جور چه این انجدی که الان هستن این ها خودشون منصوب به اون میدونن الان منصوب هستن نیستن بر هر حال چیز میدونن این بابا ارز برم که از سال 744 از سال 744 اول خارج حفظ مرگون فهمید که از سال ۷۷۲ وفاق کرد با بلادت چیم نمیدونیم اما بهش از ۷۷ سالی با حقیر شده بوده وقتی مورده اگه بگیریم ۷۲ سالش بوده مثلا ۷۲۰ چیز و در دوره شیخ حفظ و هر حال خیلی جغا هم بوده چیز، حفظ شاخشی اخ احبایساق از 744 تا 758 چهارده سال سلطنت کرده که در دوره جوانی چیزی در دوره جوانی است. بعد از او این به دست گرفتار می به, به دست مرد قاطرچی چیزی به نام مبارزی الدین محمد مذفری ارز کنم که ما با روزه دیمیست که نزشتو باقل با درمیت میکنم کنم که بچهان صرفانی که هست شاه که بیشتر دوران کرل و پختگی حافظ و دوران خوب زندگیش در دوره شاه از بوده از 760 تا 786 سال. بسطه این دو تا مبارزه دینه که از 758 تا 760 بود و پس که مردم ازدار کرده بود مهتسب پشت میگفتن خیلی، قبلا همگاه اصلا منحیات و منکرات و کارهای زشت هر چی بود کرده بود بعد به فکر توبه میفته منطقه فکر کنید که مردمش ایلازم با خودش توبه بده و قرآن بخونه روزه بگیر و اینا در همون موقع میگه که دشنامه های میداد که مکاریان و استربانه هم از شنیدن او عرق شرم در چهرشون نمیشه و بحث تلاوت قرآن قرآن می آوردن مثلا محکوم بود قرآن هم میزشون رو دست خواهی سر بابار میبرید و قرآن میسه که یه مگست از دنبال آیه میگرد میخوند خیلی آدم مزخرفی بود و حافظ ح جز تیرهای جنسوز از شعرش که حواله کرده مطلقا اسم دین نورده فقط اسم محتسب برده و مثلا میگه که ای دل بشاراتی جهانت محتسب نه و می جهان پرست بوت می به سر یا مثلا فرض کن که میگه که همریز پتره که از می توهیست جامن این از بنده دعویب از محتسب گواهی امثال اینا خیلی زیاد و اغلب کلمات محتسب پیمگه اشاره به این مبارزی دیم شهر شجاع در سال 786 میمیره روابط اینا به هم خیلی خوب بوده بعد از شهر شجاع که دور شهر شجاع علیه اشکالاتی هم پیدا میشه مدتی برادر دشت شاه محمود این از می توانونه دوباره بر دیگه و من و خیلی نمیگم برای اینکه کار اون چیز مگر اگر علاقه من باشید به این مطالب میتونید تاریخ اطرافظ رو حالا مون دوتر غنی بگیرید و مطالعه برنامه جزئیات مسائل و مطالب رو میگه اونجا علاقه از این یه سری هرچند دیگری هم بودن در اطراف شرا است که خااجشون روابط داشته مثل سلطان ووبسی جلایری که در برداد مثلا. مثل قطب الدین تهمتن که در جزیره هرموز میده. اینا یک یه اده اشخاص دیگری هم هستن که باشون روابطش داشته. ولی بعد شاه جایی که میمیره دو سه تا از بچه های دیگر بوارز الدین بودن شاه یحیا و نمیدونم زین العبدین و شاه منصور و اینا هر کدوم مدتای خیلی کوتاهی چیز میشن و فتنه و بوده آخر عمر حفظم بوده تیمور هم میاد بعد زین و خلا شد بقای های نسل چیز رو برمیم بزه نسل مبارز دین رو هرچی بچه اونا بودن من میباره و دیگه اونجا رو تصدیر میکنه شیراز رو حفظ هم هم وقتا دیگه میمیره برای اینکه ۷۸ ۸۶ تو عرض کردم که ۷۶۰ جا چیز میکرده پایم ۱۴۶ بوده ۷۸ ۷۶ بوده دیگه حفظ ۷ اگر مرده باشم اوایل 792 مرده یعنی سال 792 رو ندیده برای اینکه دو تا مده تاریخ هست یکی نگه 791 یکی نگه 792 و مرحوم محیط تبا تبایی گفته که ظاهرا به نظر مید که هوافر 791 خاجه در گذشته و اوایل 792 رو به خاک سپرده بنابراین سال 791 یعنی چار پنی سال بعد شاشوزای دیگه بیشتر زنده ندید قطب دیم تا هم تا این که میگه که پایه نز بلند است و جهانگیر بگو تا کند پاک شد ده ده و تا هم پردوهرم اشاره روید یه فصلی یاره اینجا استاد، محاصران حافظ خیلی مختصرم هست غیر از, از پادشاهان ارس کنم که پتران اطراف بعد وزرها، علمه‌های معروبی که حافظ ازشون اسم برده و اشخاص معترم دیگه‌ایی که بوده اینا همه رو گفته و همه این مسائل در دو، چهر، هشت، نه صفحه است که اینجوری اگر توفی بکنید که میشه اینجوری توفی بکنید تا خواهد اینشه پنج و این رو مثلا زحمت بکشه این چیز کنه تمام این محسن هم که اونجا رفقایی که ندارن میتونن بگیرن که به گرفته روی ندیشتی این مال این. حالا برگردیم بریم سر خار دست. سفرم انسان. سفرم انسان. سفرم باید، من خواهد درست دوزیش میگم دوبله فرسی شما میگم حال میگم بفرمیم باید، باید که دوزیش داره دیمانه میده به بعدش هم این مقداری همین کارپا رو بیرمت داریم که پیش همه یه چیزایی در به نظری رو کاغذ میگن در عمل خلافش عمل می کنم شما یه دونه حضب سیاسی تو دنیا دیدین تو دنیا، تو ایران یا دنیا که برماش خیلی قشنگ و, و پر از زم و از ادالت و انصف اینا نباشه یه دونه دیانت دیدید که بگه آقا دوزی کنی بگه بل بلسر زن مردم بریم بگه گروه بگیم ولی در عمل کسانی که متواجینه به این دیانت ها هستن همشون بدون استثناء دیدیم که اخوندای تمام هردی از بوده بگی تا کمپیسیوس بگی تا یهود و نصارا و مصرمون و زردوشتی همه شون آخوند آخونده جنسیشم فرده <تصفي> صوفی از لحظ نظری میگه این مکتب عربیتی که میه اینجا که پروی میل نفست بذاری و بری به راه امسانی بید یعنی از مرحله حیوانی دیون بیایی و در مرحله انسان. اما در اول وقتی که میری میبینی که خیلی اصل مطلبیری که پولی بدی و چیز بکنی و بعد یه آهوگردینی هایی دارن و ترتیباتی دارن و معمولی میدارن و یه جوری میگردن مردم ساده بیچار رو پیدا میکنن و اینا کسی تلفونی داره منم شوارش از یتشتار دیگه زنه تنها مونده مردونهن قریپ مونده اینجوری جورایی نور میرن یا حرفا اینجوری میذاره عرضایش میذنم تا بخوم تیرش میزنن اصلاً معطوفم بعضی مداتی هم باباوشیار میشه دیگه نه هیچ خبری از اون مسائل نیست به هر حال که تصرف نظری اونی که تو کتاب نوشته، خیلی عالیه وها اثر هر حس های نفسامتون بر دنیا رو به چیزی نگیرید مهر دنیا وارد بتون نشه البته های حسابی نمیگفتن که برین ترک دنیا و چند بیز مشوینن ریاضت بکنین نمیگفتن چون بیز تو چه بازار که با مردم معامله کنید زندگی کنید کارتون میکنید تا دل با زیاد به دنیا نریشته بشید یا دادن ممکن خیلی هم تغییر باشه، جز همین کیان میگن اگه ماوش روش همین بجونش باشه بود این که میگن ممکن است بجون چیز داشته میشد ولی خیلی راحت بتونه از این سفرساز کنه فرق داره به هر حال تعالیمات اون می دن اما حفظم رفته سوره ان بس که راحتی بجون نه در آنال فزون نیست با همین دلیل اگر ما دیوان حافظ رو میگامین این حافظ صوفی نیست یک کتابی هست که من حالا برای همه رفقا میگم اگر بتونن حتما این کتاب رو تهیه بکنن کتابی است به نام نمای یا حافظ یک کتاب طلسطی همین قضیه از این طلسطا میادش کتاب از این طلسط این تمام لغتای دیوان حافظ رو دونه دونه نوشته که چند دفعه اومده و کجا هم اومده باقیه لغت به دو معنی، سمعنی اومده هر دو سمعنی شو آورده هیچی دیگه هم از این نداره شما الان این چه فایدهی داره؟ کسی که میخواد قر بکنه کار جدی میخواد بکنه دیوان و حفظ میخواد بوینه نظر و حفظ چیه؟ درسته؟ این الفابتی که مثل میاره ببینه که مثلا حافظ محافظ مورد لحظه صوفی آورد. ترکیبات صوفی، صوفی وش و صوفی افکن رو موندیم من هم و از این قبیل هم مثلا یک دهت رو نه هره میدونم. شما بهت و بعد نگاه میکنید ببینیم در تمام اینا صوفی رو انتقاد کرد. صوفی نه دام و سرحق باز بنیاد مک با خلاک صوفی سرخوش از این کپ کپ کت کلا کت به دو جامعه دیگر از تا کپ براغت دست کرد نمیتونم در این صوفی وشان دردی ندیدم که واقعی باید عشق درد نوشن و نظاهر این فراون فراون یعنی همه مواردی که صوفی رو آورده انتقال شبین این استاد به صوفی یکی شن. صوفی آمده که مراد صوفی نیست مثلا آسمونه ترکیبات این, این همه همهند پس معلوم میشه که ببینیم که حافظ کوفی نیست. اما علت اینکه ما به معلومت و تصور به اطلاعات تصور در شما حافظ استناد میکنیم و او را بر اساس نظریات تصورق توضیح می و شهر میکنیم دلیلش این است که، مکتب نظریه تصرف، مکتب اخلاقی و انسانیست یعنی همش اونجا صحبت شففاتی به خلق اصلا اساس تصرف که در همه دنیا هم هست اینه یه بار نسی که گفتم اینه حالا برای بار دوم با میگم اگر شما یه وعده قضا داشت شما گوش گوشت نتونم باشن شبان نداشت یکیس دیگه بیمین گوشت این قضا رو بدیم به اون و خودتون چپ بریم گوشنه بخواهیم خب گوشنگی میخوریم اما در این حال لذت می‌برید، برای اینکه به اون جنبه حیوانیتون غلبه کردیم لذت می‌برید، اینکه یه دل دیگر شاید کردیم یه گوشنگی رو سیر کردیم و خودتون انقدر شخصیت داشتیم که این رنج بوستنگی یشه رو بکشنیم حرز این اساس ت دیگه آقا از در های نفسانی اگر بلند شی این برات حالات روحانی میاره و حض نفس میاره و باعث میشه که تو دنیا رو یه جور دیگه ببینی این اساس قضیق حالا باید ترتیبات کارشی که خیرقه تانش میکنی یکی میگه ریاضات دیشون یکی میگه برو دست کده به پی چکار کن چکار کن بعد لا همه به قول خودتون یه چیزی میگن دیگه ولی با هم همه دشمن چطور میشه من اگه دارم تبلیغ می کنمم که شما آدم خوب باشید امسان باشید تبلت بشید آدم بشید اگه یکی دیگه این حرف زد داد نراحت بشه اگه آدم اومد گفت من حافظ توزییح میدم بهتر از بنده توضیح داد دی بیشتری من درست جمع شدن من با نحت بشه ا این نردم دروغ یعنی درست اینو نفهمیدن اگه ای فهمیده باشم ما خودم برم اونجا از اون استفاده کنم اصولا ولی ورن عمل ببینیم اینجور نیست اینه یعنی که حافظ شعر شعر صوفیانه است و اون قسمتی از شعر فارسی که ما بهش می و می شعر ما در دنورت همچین و همچینه شعر صوفیانه است شعر امصاری در محصر سلطان محمود که عرضش نداره که شعر فروخی که ارزش نداره شعر سعدی ارزش داره که من یادم ازایی دیگران که در آقایی سهید گوه هرم اینو تو اون جامعه امرال سابق هم ارش رو نوشته بودن ترجمه شو دوشته بودن نتو یا مظایر این چیزا شعر حفظ دیگران شعر مولانا شعر مولانا را همون تمام دنیا خوشبختانی چون مولانا به انگلیسی پرجمه شده و مردم انگلیسی زبون میتونن بخونن و انگلیسی زبون به اسطلاح مردم با سواد و فریخته است قده زیادی هزاران نفر یعنی کلوبای چند ست نفری به اسم رومی به قول خودشون اینجا بر این منعاله که بر رومی معروفه به دلیل این که بر ترکیه و ترکیه دولت روم شرقی است رو رومی میان میشینن مصنبی میخونن نمیدارم چیز میکنن و موزیک میزنن کارهایی میزنن به چیز مولانا برای اینکه احساس میکنن که اون احسایش و احرامشی که بشهر انتظار داره اینو تکنولوژی و این تمدن و این طول زیاد و این واضعه هیچ این روزشون نداره و اگر بخوام این کار بکنن باید اون راهی که مولانایشون میده بره اما دستگاه هایی که مال استاد من نرون بعد یه زمان فرزنفانی که از بزرگترین تصویف شناسای دنیا بود و بزرگترین مولوی شناس دنیا بود تا اخر هم عمرش به فنده سعادت این را که مشرفی به فرمشن پیدا کردن تمام پیرای صفیار هم ولی خب میدونید خضییت چه این هست که بنده که اینجا حرف تصویفی میگه مطلقا من یک کلمه نمیگن که برید به عربیش و شیگه به خود تو مربوطه میخواد برید میخواد نری. و من هیش تزمیم نمی تو اون کسانی که میگن ما دربیش هستیم همین است که اینجا نوشت من نمیگونم من نرفتم خبر ندارم اگر میخواد خودتون برید ولی من خبر دارم که یه مردی که پیر بوده خودش را مرید داشته هزاران مرید داشته به نمه حجم الله به صدیه کریفن یه کتابی داره که بر همین دانشگاه به اکنی هم هم کتاب اصطور این خودش پیر صوفیه بوده بعد میگه که که کزاش میکنه بیرون گفت من پیش خودم نیستم فکر کردم که بینیارم میگن منو دستگیری کنم، منو هدایت بکنم، منو به سرمنزل سهادت برسونم من خودم پیش خودم فکر که مرد که تو خودت که خودتو میشنسی تو تو چجوری میخوایی مسئولیتی ۳۰۰۰ مهتر رو در قیامت بگردن بگیری که ما همه اختیار رو مددیم دست شما جون و مال و هر هرکی شما بگیم مثل مثل مرده که زیده اصلا مرده شده من در اختیار شما دست ما رو بگیرید من رو به میتونم برسیم؟ من خودم میتونم برسیم؟ خوب عربی وازار داشت میره افید یه اختربشت دارم گوه این چیه؟ خوب یه اخت و اگه این به چه عرض میخوره؟ گفت این آدمو رو میکنه گفت برگیش خود میخوند این خودشو نمیتون نیگه اگه همون رو تحوییت کنه <تصفيق> حالا ناساله اینه که این عاج بلد سلید هر کسی که به عدی رهبری و پیری کرد این از راه بیرفته دید برای که پشرت اصلا بدون نقص کسی که درمو دست داده رو سر رخم بالا نشست این چه که از دو مورید بازی با این عربا این طوره بیزنس می, می و خود گفت اگر کسی میخواد که دنبال کارتن سبب باشه باید خودش سره و کوشش بکنه نمی البته به اون مقصد اصلی برسه ولی تا اون حدی که می خودش سعر کنه خود آدم اما هنچه تو بخواید یکی دیگرم آدم کنید بگم بلو خود میشه یکی دو تا و پنج تا و هزار تا و ده تا و تو این شهر تو اون شهر تو اون شهر, تو اون شهر این اساس رو نیست و شعر هفته شعر صوفیانه هست ولی صوفی تا که از کتابش برمیاد نبود ولی تو نها این واجه نما اون خیلی خیلی خیلی جالب ببرین که میخواد نظر حفظ رو عشق. راجب جبونی چی گفتی، راجب تیری چی گفتی، راجب فراغ چی گفتی؟ تمام اینا رو تمام تر چند باری که هست، این چیر مال است که پوشش گفت. می توانید که برید و پوشتا هم بگیرید، اگر اعل تحقیق و قطفت و, و, و, و اینا هستید، ببینید که نظرش دیگه یک کونهش از زیر دست رد نمیشه که یه رسید بینید که مثلا خلافش هم از ا من این نرشتم بعد اون یادم نبود، نه که هرش هست میتونید ببینید و میتونید که چیز کنید خودتون تحقیق کنید خودتون ببینید تو ساده هستید، حفظه و صوفیه و نگاه میکنید که میبینید چی گفته، برست میشه باید که چیز کتاب خونامی هست به من رویم تنون دکتر، مهندخت صدیقی یا صدیقی، نمیدونم، دکتر عدد فارسیه و همکارونده او در فرهنگیستان عدد و هنر این کتاب و زحمت کشتن جمع کردن اسمش واجه نما یا هفته زید و, و امیرکویر هم منتشه کرد صدیه جاوند میشه خیلی خواهد بسیار کار مطمئن این باید این کامپیوتر اومده، تا این عمر دوستان کامپیوتر باز که من از این دیسکت بگیرن و چون راحت. بعد از من که قاعدتاً هست دیگه اون زحمات همواد بکشه. البته به کامپیوتر دادن چطورش رو نمی‌دونم. هزار قرابر کار استاد تر کنه و سریع تر می کنه خیلی خوبه تا حتماً بعد این کسی که میخواد این فلاویان رو بنیویسه خودش وارد باشه برای اینکه همین خانومی که این چیز رو درست کرده این کتاب رو الان زشن هم هست که من خیلی زحمت کشتن خیلی خیلی کار کردم. ولی مثلاً تو شعر حافظ از می که انشاءالله می رسیم میگه گه در سیرم صبح یا وفا نامه ای که برد به دوست زخون و دیده ما بود مهره آن دارد وفا نامه مثل عهد نامه مثل گنج نامه مثل سپس نامه اینجوری بعد اینو ظاهران خونده برید صبح وفا نامه ای که برد به دوست بعد وفا رو سبب داشته منر هم سبب ترکیب و وفا نامه مثل یعنی درست نه؟ خب کامپیوتر که اقل که بتونه اینا رو ترکیبال درست کنه یا نکنه یا چکار کنه اینا مربوط هست اون آدمی که چک میکنه بعد یه آدم واردی اگر باشه این رو با دقت تحییه بکنه و هم مشکلات حل بکنه و درستش بکنه البته که یه جای حرف نیست خب بخون آقای صداقت سبا وقت سهر بویز زولفی یاد نوارد سبا وقت سهر بوی ز زرد یا می آورد دلش رویده به بود در خواه می آورد من اون شکل سنوبر را زباق دیده برکندم که هر گلت از تمش پشکو مهنف دار می آورد زبین خواهده اشتش بعد که خون راه کردم ولی میلی خون رو در زمین اندازم. گفتگو خصوصا او که که یه بیت اینجا در نسخه دوچ هست که اونجا نیست و بعضی جهاش هم به خود تفاوت داره و حالا من از روی نسخه استاد خانلدی میخونم چون ملاحظه فهمید بعدم توزیم داریم که از رو استگر فرق داره از این جهت. صبح وقت سحر روی زدولف یار میآورد دل دیوانه ما را به نو کار میآورد من اون شکل سنوبر را باغ سینه برکندم باغ دیگه بود اینجا در نوسق عزبینی باقه است من اون شکل سنوبر را باغ سینه برکندم که هر گل که از قمش گفت مهنت باق می آورد زبیم قارت عشقش دلن در خون دل پرخون بود دلن در خون به ها کردم ولی می خون ره به می آورد این بیت نیست در نسقه قزمینی تروغ ماه میدیدم ز بام قصر او روشن که روی از شرمان آن خورشید در دیوار میآورد به قول مترب و برون رفتن گه و بیگه راه گران قاصد خبر دشوار میآورد سراسر بخشش جانان پرید لطف و احسان بود اگر تصویح می‌فرمود فرمود و گرز و نر می آورد. عجب می داشتم بیشت زحف زجا و قیمانه ولی بحثی نمی کردم تسروفیوار می آورد. افل و چین ابرویش اگرچه نتوانم فردش به هم پیامی بر سر بیمار می آبن. خیلی توضیح زیاد نداره این بزن. و... چیزی به غزل فراقی است به قول خدا حفظ, حفظ غزل هایی که در اون شکلی از فراقه بشمیده غزل های توی یک یه غزلی داره خیلی غزل زیبایی است البته ملمه یعنی نسمش عربی است نسمش فارسی عرض کنم که خلاقی من نباها <سؤال> حافظه کار <قاو> نمیتونه سلیمه منز حلت بالعراقی من نواهام اولاقی علا اصطار برم محمل دوست علا رکب برم کن تا لشتیاغی خرد در زند روزنده زمینه به گلدانگ جوانم اراقی چه چه بعد جوانی باز میعرد به یادم سماء چنگ و دست هفچه می باقی بده تا مست و خوشدل بیارم برکشنم عمر باقی اخرش میگه به سال دوستان روزی ما نیست. بخن حافظ غزلهای فرام. ایرانی غزلهای, غزلهای فرامی یعنی غزالهای که داره شکل از سراغ اینم هم همونطوره صباح صبح وقت سهر بومیز زلف یار می آورد وقت سهر وقت شکرفتن گل همون گل ها موکن باد سهری که پیش می می شکرفه سبا هم نسیم ملائمیست این بو رو پخش می کنه در سهرگاه بوی زلف یار هم حتی زلف یار هم باد سبا میاره دل دیوانه ما را در اون نصح هست به بو در کار می آورد اینجا به نو در کار می آورد درست درست من اون شکل سنوبر را اینجا از باق سینه برکندم باق سینه این شش نسخه معلوم خانداری نسخهاش دو نسخهاش باق دیده است چار نسخهاش باق سینه است و اینجا بستگی داره که چجوری شکل سنوبر رو بگیری اگه درخت سناور بگیری اون در دیده است برای اینکه مرافقت به دوست که هم چشم آدم میافته یکی از این اگر که سنوبر رو میوه سنوبر بگیرید کم هم کاج باشه قلب قضا به حافظ اشاره این مطلب کرده جای دیگریم یه دل سنوبری هم برد دل سنوبری هم همچون بید لرزان است، و اصلاف قد و بالا بیشون سنوبر دیگست و اولی دل سنوبری یعنی شکل نیگه پچ محفوظ شکل, شکل قلبه دل قد و بالایتون سنوبر باید سنوبر حالا اگه بگه از باقی دیده برکندم اون شکل سنوبر یعنی معشوق که میگه که پدر من برابر این به کلی سطح اگه بگیم شکل سنابر را ز باغ سینه برکندم نمید از دلم هم و از شستن. برای اینکه دل من به هر طرف که می رفت که سلا... این برمید چهار... من هم شکل سنابر را ز باغ سینه برکندم که هر گل که از خمش بشکست مهنت بار کندم گفت البته در هر دو سنابر چون نباته با گل این هم زبیم غارت عشقش دلن در خون رحو کردم تو پهرت و تاراج و نف میان چپا میکنم دیگه اون وقت کسی هم زخمی باشه مردم همه ترس خود میذارم من دلم با اینکه که قرب خون بود بلش کرد با این حال این خون ازش میرید و میرم ترق غارتگر بست ولی میری خون راه بدن هنجار هنجار یعنی راه به قاعده به هنجار یعنی به قاعده نه به هنجار یعنی بی راه ره خدا یعنی به اون ره می رفت راه خود اون قرارتگر می رفت فروغ مهمی دیدم زبان غصب او روشن مهد آسمون بام غصب نیست بام غصب مهم نداره این مخصوب صورت مهد وقتی که از باهم قصر روشن بشه مراد این است که معشوق وقتی بالا لبم تو رو به ماه می بیدم زباهم قصر او روشن که روی از شرمان خورشید در دیوار می آورد اولا ما خورشید چیزشون عکس همه نمیلان به خصوص در, در دوره بعد وقتی ما هم همه درست در اون ای که خرشید تو رو میره ماه می تو بنابراین میگه خورشید می رفت از این ماه در این حال که در این که مرادش اینه که نشتر من از خورشید زیبتر بود چون بردی هم که میاد خورشید میره ره بنابراین اشاره لکیسی به هم ده به قول مطرب و ساقی برون رفتم گه و بیگت برون رفتم یعنی از راه بیرون رفتم در این حال که گفتاره به معنی تصمیف هم از قبل هم گفتی می که به قول مطر و ساقی برون رفتن جا بی جا، یعنی از راه خارج شدن چرا کزن را گران پاسد خبر دوشما می که از اون راه خبر نمی رسید. این خبر نرسیدن همون است که بعدی میگه ای که سهر عشق و پرخانه بیاموز خان صورت راجن شد و حواظ نیامد، این مدعین در طلبش بی هستند خان را که خبر شد خبری راز نیمد یه از این را خبر مهمد شد و زن و عشق فاسد خبر دشبر نهود سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود این مسئله این بید است. مسئولی که هرچه از جان را حق میرسه درسته بد باشه خوب باشه در نظر ما بد باشه یا خوب باشه باید ما بخواست هر راضی باشه بخشش جامعه طریق لطفه احسانه میخواد دستور تصمیح بده میخواد دستور زنار بده زنر کمربندی بوده است که مسیحی ها و کنرشون و نشان مسیحیگاریشون بود. ببینید بعضی اینجا به صوفی زده، عجب بیافت کن به شبز حافظ، جان و قیمانه علا حافظ، در بنی حفظ قرآن هست. کسی که قرآن در چهر و بعد از بر می‌خونه با جان خوانش کار داره. عجب می دیشب زحافظ جمع پیمانه ولی من اش نمیکردم یا ولی بحثی نمی که صوفیوار می آقا برای اینکه صوفیات وزعت مشرب دارن یه خوده بروری همی چند این اشاره این مثلت می کنیم افلح. افلح یعنی خداوند افت کنه خداوند بیا چین عبرویش که افله چین عبرویش اگرچه ناتوانم کرد میگه چین عبرو مراد خود حت ترسیه ماهش دیگه که ابرو که چین نداره که وقتی چین بر عبروی اندازم نشان تاکوری که اوها ترسی و سرگرانی دیگه میگه که چین عبرویش من رو ناتوان کرد ولی به اشوه اشوه معنی فری بستن این هم که لوندی های فنوار میگن اشوه ولی دو سکول میزن هم نده به اشوه هم پیامی میبرست بیمار بیمر میابد حالا توجه کنید که چقدر زرافت در این چشم چشم معشور رو میگن بیمر ولی که مخنوره بود زیبایی اون چشمی بیمار بگید عبرون بالا سر چشم میگه به عشبه هم پیامی بر سر بیمار میابرد یعنی چین عبرون هم ازیاد میکرد ولی اون بیمار که زرش بود برمزد برای تنجید نگاه؟ بر افعل لاچینا ابروم اگر چنا تاو نمکرد به اشد هم پیامی بر سر بیمار می آورد. خب از بسیار غزل زیبایی و نشاط انگیز اگر اینکه غزل تراقی بود این پشیمان می‌دید. um grupo خاطر ما کوشتی کلاه نمت بسا شکست که بر افسر شهی آرد که ناله ها که بسید از دلم به خرگه ما توی یاد آرز آن ماه راهی توی آن ماه خرگهی آرد دستان رایت منصور بر پلک حافظ که اتجاب جناب شهنشهی آرد از من اینم باز در مصحای دیگه داریم داره این مقداری مثلا اون چه در حافظه من دارن بیا بیا که طهور روش را رو رزوان در این سپرد برای داری روی آقا ازش مثلا و از این تاره ولی خود من حالا از روی نسی خوانده این چیز می کنم می روی که برید بعد سبا دوشم یهی آور که روز مهنت و غم روی به مطربان سبوهی دهیم جامعه چار به این نوید که بعد سهرگاهی آورد همی رویم به شیراز با انایت دوست، زهی رفیق که بختم به هم رهی آورد بیا بیا که تو بهشت را غزبم به جهان ز برای دل رهی آورد اینجا این سفر ببینم تو جاست به تو چهارم بله سه در این جهان در این سفر نده این جهانه به جبر خاطر ما کشتیم کلاه نمت بس آشکه که بر اکثرش بر اکثر شهی آورد چه ناله که رسید از دلم به خرگه مف در بعض نسخه به خرمن ماهه که این حاله باشید تجاد و عارض امنه آورد. رسند منصور بر طلق حافظ که التجا به جناب شهنشهی آور اولا توجه من که حافظی که از خصوصیتش می که مرهم گذار دلهای خطه است مردم دردهاشونو در با حافظ در میذارن و او با امید دادن و با نوید دادن و با دستن کلمات دلپذیر و تقلیت روح امید بر اینا اینا رو سندگید و کار مردم مردمی که گرفتار مقل و تینور و این و طرف و بدبختی و سختی میدن که ما در طول تاریخشون به اقل در این چه ست ست سال وقت ای من یک دو سه تا پنجا سال بیشتر نمیدونم که مردم یک کمی روی حافظه شدارم شدارم از وقت دیگه بوده و نراحتی در یک مواردی مردم رو دلخسته میچاره لعقلی کسی میخواستم که بهشون یه امیدی بده و حافظ این کار میکرد یوسف گمگشته بازایدی کنه اما برید بازت هوادوشن اگه یا ون نظاهی رو این اگر بگردید بر سر هم هم که گردی دست کاراید دست کار زنم که خصوص ترابون در حافظ هست و همهش به وقت روح امید هست که میده ارز کنم چیه هم چنان من هم نفه هم هم نه، نه چنین نمان دو چنان نیز هم نفه هم نفه هم چیه؟ هم آلا من پیرم شما هر چطورین رسیدم از دیدن ایام غم نفهمیدم نم چنان نموند چون این نظام ما با فرابون اینو هست این چه حافظ حفظه حضرت بخشی میگه برید به بعد سبب برید به معنی پیک. و الان در ممالک عربی میذارن البرید العراقی یا یعنی پست عرب برید یعنی پیک برید بعد سبب اضافه است یعنی بعد سبب مثل پیج پیک امراد سبب دوشم دوش یعنی دوشم آگهی اول چی گفت که روز مهنت و غم روز کوتری روز <تصفح> محنتوخم تن، تو تاکیم به مطربان سبوهی دهیم جمعه چارک اینجا یه اشارهی به یه رسمی هست که باید بتونید او که در مجلس سماع که مطرب میاده و میزده اگر تو به حال می بر به وجد می و به رقص بر می و خیلی حالی سمتیم شد گاهی یه هشت مفاره و به حول خودشم خرق زرد کردن می گفتن زرد کردن یعنی فرصه رو و اون جامعه رو به رسم ام آم می اندخن وسط مجلس برای این ممترد. و حکم این مسائل رو را... که چه جور است چه جور نیست و چه جور است و چه کار باید بکنن چه نباید بکنن چه جوری قسمت بکنن و کدوم به کی می و چطور کار تو نیست یک کتابی هست بنامه مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه استاد من مرحوم جوالدین هوایی این رو کرده و در اونجا احکام این خرقه و این که چجوری مطرب بدن و در مجال استماع تمام جوزی هست در این کتاب مصباح الهدایه هست میتونید اگر علاقه من اونجا بگیم صعبی هم یه قصه بسیار بامازهی داره خیلی قشنگ در این واقع که میگه پیر من عبالفراجب رو به من میگفتش که به سما نرم به من و من میکرد چندان که من را شیخ عجل عبالفراجب رو دوزی به ترک سما فرمودی اون جو... فبان شبابم قالب آمدی و هوا و هواست قالب ناچرد به خلاف رعی مربی قدمی درفتمی و از سرود و سما حضی برگرفتمی و گفتمی صوفی هر به منشی برفشانت دست را محتسب گرمی خورد محضور دارد نست تا اینکه شبی جایی رفتن به محفلی رفتن و در آن میان مطره می دیدن چه مطره؟ جان می گفلد زخمه ناسازش نخشتر از آوازه مرگ پدر آوازش دست عریقان از او برگوش و زایی بر لب که خانیش مطربی دو از این کجاست است که کس دوبارش ندیده در یک جا راست چون بنگش از بهم برخواست هم را نوی بربادن برخواست <تصفيق> بعد باز میگه فلانو بعد میگه چون در آغاز آمدن برباد سرای میزوان را گفتم از بهر خدای زیبقم برگوش کن جیبه زیبقم در کن تا نشنوهم یا درم به تا بیرون بردن میگه تا از این پدر رو این موتور دارو برد و من تو درست انعام به این بخش میگه دوستان منو سرزنش کردن که این چهر کسی بود غلط باشد ترگه مشاهد به این متره می که در همه هم دیناری برکفتن دیگه هست و قرازهی برد قرازه هم پول خود ترگه مشاهد رو میگی، دید گفتم نشانه می گفتن چیه؟ گفت پیر من یه همهش هم میگفته که من به مجلس سماع نرم و من هرچی میکردن نمیشد اینکه اون مطربان من توفید ها چیزی نرم این است که قیقه هم دادم برای این توفید یارم شد که میتونم نیزه هر که پیر رو اطاعت بکنم ولی با ارحال به مطربان سبوهی به هین تاج اشاره اشارهی به همون سرگاه و بریده شده به مطربان سبوهی به این جامعه چهست به این نوید که بعد سهرگهی اول که روز مهنت و غنف بود همین به شیراز با عنایت دوز خیار می کنم. من اشاره رو یه حدثی کاریخی کردم من هم بود که حرف کردم که شاه محمودی بود برادر شه شجا پسر سر مبارز دین و اینا به هم چیز کردن بود پدرشون گرفتند، چشمشون میل کشیدند، دورش کردند، زندانش کردند، تو زندان راست می میکرد، بالاخره کلاک ککندند، شاه محمود بیاغلی شد به شاه شجایی مدتی، شاه شجا هم اینکه خیلی خوب به مردم وقت دار میکرد، بسیار شاه خوب مثل شا... هم هم بود، مثل شیخ عباسقم هم اینطور بود، امیدوارم کتاب لاقن کتاب از کوچه ارندانه دکتر زهریتو تو بخونید که رجب شخواسق آقا اینها دستانهای محسل، نطاله محسل برده بسیار کتاب جالب است. ارز کنم که شهرشو جا هم با اینکه خوب بود بویی مثل اینکه خوشید دل مردم رو میزد. بسید موتیزی زوری برشون میزد. احمد هم و خلاصه چیز کردن و کاری کردن که سرمه همود رو خمک کردن و احمد بیاری یه دیو رو فیراد رو گرفت و شهرشو جا ه رفت سنت عبرو عبر وزیر بسیار ترجیه که داشت جلاب دیتوران شاه که این خیلی خیلی مرد سمیمی پاول لاویق صادق خدمتگذاری بود این بود و مال و مرد و همه اینا برای شهرش را درست کرد تا بلاخره مرد را ندارم شاه مرد اداره کردن منبکت و چیز نبود آدم بیربتی بود یه سپاه اینا از گرفته بود. اینا هم دست بسیدن به خوارت اینا مردم بیدن که نون خود چونه هجور کردن خیلی بدتر شد فرستادن دنبال شخص جا که بگیرن شهر شجاع به طرف عبرقو و همجر تو کرمان و میگوید که حسک داشتن هم راشون. حسک شد هسک به میخوای میگن که همین الان هم پچافتوی ها دارن که جاده این تایر پنچه ها بعد همین بوده به همین صورت می تو راه این به یه طرفش بالا باییست یعنی سه تا خار بود هر جوری افتاد زمین یه خارش بالا باییست اصم از روی این را چی رفت پاش؟ هم سلنگست، اینه چیست به داری حسای که هم راییشون ریخن اینو بعضی می میشنن خسک، خسک نیست حسایی که بایی رجی بس نیم هستن اگر رفتن مثل هستن هر برگوه هستن کرمان و بعدم برگشت شاهشو جایی که دو سال بعد مردم هم بکنم بف... بعدم بیاد به این که بر بر میدارد اون این آن اینا این ظاهران اشاره بود و این که اوز مهنت و قمرو به کتایی آوردم یعنی شاهشو جایی هم میرسی ظاهران همی رویم به شیراز با انایت دوست زهی رفیق که بختان فهم رهی آورد. بیا بیا که تو هور بهشت و رزوان بدین جهانزه برای دل رهی آورد. رزوان اسم فرشته دربان بهشتی و آن تمام مفضوعات بهشتی طبعا همیران بهشتی درستی رو است یک دوبار می‌کنم هوور جمع جام تلنی است و جام هوور جام هاورا و اینا. هر دوشون هم هورا و هم عینا تو مامیه زن زیبا سیاه چشمی است تو چشم او سیاهی بر ستیلی خلافش داری. جن هورا مشهور جن عینا هم مشکی این, این. مامی این. در فارسی این به صورت مفرد بکار نسته این یا به جمعه به صورت مفرد بکار رسته. این کلمه در قرآن آمده و هور این که سال این برای تعمل و توررو شعران این هم رو گرفتن به کار بزن بیا بیا که تو میبینی که حافظم به صورت چیز بکار بود صورت مفرد بطارد. بیا بیا که تو همور رو رهش رزوان به اینجا برای دل رهی آورد رهی یعنی بنده دل رهی دینده بنده بنده, بنده چکسته افیاره بگرد من منطور منو میگه بنده خب بسید استراحت بکنید برای که این بعدی شدید بسید زیاده به جبر خاطر محفظ یکی <صفح> از معانی جبر چی کسی داری یکی جبرانی زوره، زیز رفتن و زیز یکی به معنی اون علمه یکی هم به معنی شکست بندی شکست بند شکست بندیر میگن جبر سعدی هم داره روزگار سلامت شکستگان دریاب که جبر خاطر مسکین بلا بگردن اون جبر مال شکستن اوستخونه ولی دل شکستن هم میگه نه کسی به صبح بشت و کنه او هم میگه جبر اینی که میگه به جبر خاطر مرکوش خاطر مرک شکسته پس این جبران از همین ها جبران از همین جبر منی شکسته بندیه حالا ببینید که چقدر قشنگ این جو. این جبر و شکست بر در نصرهای درمان بیگه به جبر خاطر نکوشکی این کلاه نمد بل نمدیم اون مردم فویلی شده بوده این کلاه چه بسیار شکستهادی بر تاج شاهی بود به هم بر نکن تا تو دلی که آه جهان این جهانی به هم بر اینونه به جبر خاطر مرکوش که این کلاه بس ها شکست که بر افسر شهی آورد، افسر به معنی تاج و اصلا ربطی با صاحب و ارتش یا نظمیه او بله کلمه افیسر از افیسر در انگیزی و در فرانسه بوده اون از افیس و دفتر یا است. اینو هم برشن کردن افصر بایلله سره از دو جوزه جوز دوبامش جوز اولش یه پیش آوند اوستاییست ابی اوی سر را یعنی چیزی که روی سر عبی یعنی بالایه عبی سر یعنی روی سر با و اتفاقا خیلی ببخشید قدر میخوام این کلمه با هفت سر که. برای اینکه اون سر هم وعنی سر سر وعنی سر چشم سر یعنی سر چشم شخ سر یعنی سر شخ کود سر یعنی سر فوق افسار رمتون از روی سر ایرون میارن بالا یعنی رو سرش قرار گیری همین گریز ولی این نواز این اختلاف درست برای همینه که دو چیزی که معنیشون چیه و همه با اختلاف یه اوها معنی مختلف ازش میگیرن اما قوم خوشیشون سر جاشت افسار و نی تاج چه از دلم به هرگه محچیدی نه نه مردم فمید باید نه خاطر ما رو خاطر ما رو راضی بکن برای این کلاه ما یعنی مردم فقیر یا نرزایشون بعدم چیز دیگه کل نظرش شیخا و احسان دارن دست مبارزتین بازن تسمه از خشون کشیده شد مرد چیز کرد باز سر بیرون کردن شاشوزه همان این کل نمیدی ها این کارو که هزن یعنی از جایل در شیراج بشون کنن این کلو ها سرزنون های محلات بودن بزرگتار محل و محل بودن این ها بودن ناب چیز کرن. شهر رو تسمیم اینی که حالا عملی هم بگیری اون مردم خورده پا بگی که اگه اینا رو اینا رو درست میگه ندلی پدر زیاد میارن اگرم از اون از جهت معنوی بگی شاه که مردمش رازی نباشن گفت که گفت که ملک با کفر باقی میمونه ولی با ظلم باقی نمیمونه گفتن چطور شد که شاهان عجم مثل از پیغمبر فرسیدن چطور شد که شاهان عجم با اینکه اینها نه این همین عدد با طور کشید برای اینکه عطل مراحت میکنن ملت و خوف میمونه ولی با ظلم نمیمونه این اشاره به این مطلب چه ناله ها که رسید از دلم به خرگاه ما خرگاه اگه ها تو دیگه بشین یا پنق رفته بشین یا حتی شنیده بشین از زبون زنایت مثلا قسطگوی تو خونه تو اون خیم و خرگاه رو به هم میورده اون اون خیم و خرگاه زمین خر اگه اسم باشه اسم اون حیوان معروفه اگر صفت باشه معنی بزرگ و معنی بسیاره خرطور یعنی کسی خیلی پول داره خرزور یعنی کسی خیلی جور داره این قاضی گواندارم یعنی خربت بت و تا، یعنی مرغبی، خربت، یعنی مرغابی خربت یعنی مرغابی بزرگ یعنی خواهد. راپله بشتگون رو همون بیادیم، راپله زینات بالا شد، چیده شد، چون هم هر پشتب. یعنی پشت بزرگ، خر اگر سفرد بشه، به بزرگ. و خرگاه خیمه بزرگ رو که وسط ما رئیس بود و زیرش چندتا چند تا اتاق میتونستم درست کنم و فاصلی داشته و چیز چیزی داشته و اونجا رو میتونستم و من خرگاهی یعنی رئیس وقتی یه مش خیمه بود یه دونم خرگاهاتش من رئیس این من خرگاهی که میگه اشارش به شهر واز حد سمن تعیید میشه که ظاهرن است که اشاره به شهر باز مهر خرگهی هم میگه برای که شهر شجا عدم زیبایی بود، شاید زیبایی بود و نرسیس هم بود اینو گفتم چند بار دارتون یعنی دوست داشت زیباییش هم ستایش بود نمی کنیم احتمالا میگه که دوره دوری، یعنی شکایت میکنه از دوره دوری شهر شجا هست چه مهلا که رسید از دلم به خرگه مهر خرگاه گفته برای اینکه اون طرقا به خرگاهی بسه. بر بعضی نصحان، از خرمن ما، که اگه خرمن مه باشه، یعنی حالی که میبعثم اون به خرگاه چون که رسید از به خرگاه مه، شو یاد و عارض آن مه خرگاهی عارضم که صورت این چهره رسان راویت منصور این کلمه پرچم تا چند پنجاه سال پیش هرگز به من و علم به هرگز هرچند اصلا یک جواب بهشی بوده است در نواحی تبت اونجا ها که بهش گفتن قرخا قشقاق، قاق یعنی گاف قشق، کشق یعنی عبریشم قشقاق، قشقاق، لغتش انظار لغوی یعنی گاف عبریشم این گاو سیاه یتیق بود بسیار سیاه و رنگ درخشان زیبایی و دومی داشت که تر دومش گرفون مصر منگوله میشن. یعنی مقداری موی درخشن خود، پشند، سیاه، برراغ این, این منگوله هایی که پرده اونها حوویزون که این منگوله های از روی اون ساختون این گواه به وقت وقت رو که اون تاید ها میشه بگیرن و حوویزون کنن سال نیزه شون و علمشون میگوزونم شدونم داریم من خجسته میگوزونم مبارک میگوزونم اونو گفتن پرچم اون دوم گاوه تببتی رو دوم قشقاب رو که به چوب علم و به سر نیزه عویزون میکردن به اونو گفتن پرچم و پرچم رو به ظلف تشویز میکردن حافظ داره ظلف خاتون زفر شیفته پرچم تو چه اون چیز؟ جای قم با هران ده که من خواهد شادش؟ شاده؟ کم چیزی؟ زرف خاتون است، برها خاتون زفر شیفته پرچم تو زفر رو داشت می کنه که زرف زرفه میگه اون زرف آشق این پرچم رو پرچمت شکل سروش اسلامی میگه از اثر فتمیر باد سمرغند رایت شهر و وزیده گیر پرچم یعنی باد سمرغند به پرچند علم بنابراین پرچند معنی علم است. برای علم علم داشتیم رایت داشتیم اختر داشتیم اختر کافیان یعنی دور برفش داشتیم لوا داشتیم همه اینا داشتیم بعد پرچند رو که منی اون دو مگاه رو دویست اخیران اون سال اخیر به جا همه اینا رو کار بردم میگم و قلاتی قلومه هم گوی اصلا ترکی یعنی ملا هم عرب، اختر موسیقی موسیقی موسیقی موسیقی موسیقی موسیقی موسیقی موسیقی موسیقی جه هایی خواهد که پارسی گراه باشیم که این که پارسی نیستش که لوحهتی که نه پدارش نعلومی نه روارش نعلومی داره نه چیزی داره بعداً جه هایی هم که او پارکته به کلی و ما چیزی کنیم که نمیشه این قصه یه چیزه حالا رساند رایت منصور منصور یعنی پیروز دیگه نصر به معنی فتحه، به یاری منصور یعنی یاری شده تو که یاری کنند پیروز میشه دیگه. رسند، راویت منصور بر فلک حافظ بیگه حافظ علم پیروزیش به فلک رسید چرا؟ که التجا جناب جنب و جناب آقا جنب معنی افتانهی داره که بارها همینو گفتن این هم که نگم جناب پر یعنی اینکه که نگم جناب کلان کس یعنی من شعن این رو ندارم که به خود و حرف بزنم چون برای مقالمه رو در رو باید دو تو آدم همتراز باشن همشعن باشن حتی اگر کوچیک تو بزرگ باشیم به شاگرد اجازه بگیرد استاد، چه به اجازه اینگه بانه که اگه او اجیزمزاد حرف نزنیم اگه بیشتر باشه تفاوت اصلا نه با تحرف بزنیم باید به وزگیر و رئیس دفترش بکنم پارگلن اینه که میگه که ما حرفمون عرایزم رو آستان دراتون میکنیم جنب آقا یعنی که حضرت و عنی مجلس هستن حضرت عباس و حضرت عباسم حضرت یعنی مجلس بس یا حضرت عباس یعنی این مجلس حضرت عباس به داد من ده یا اگه بگیم به حضرت عرض کرد یعنی در مئلسش که که التجا به جناب شهنشاهی و اول التجا یعنی پناه گرفتن و پناه گذیدن ملجع به همین صورت به همزه یعنی پناه گرفت ارتجا یعنی پناه دوستن جناب هم چیزی چهنچاه هم اینجا اشاراش من اصل، یعنی من اتیمولوژی نمیگم ریشش نمیگم ممکنه کسی یکی سی ویست را دیگر بکار باره ولی این امروز به ساختسته ساخت. این تحکیم ساده و من میشن این حالا من روشنواز ساختیم جدا که چشمه از خروسر ممکنه اونجا خروسر را وانی پور گرفته باشه بر سبیل اهمال یا تغسطه اما اصلا خروسر اگر اگه پدر مادرشون میخواه سر و کوه سر و نیست خب اینو من خودم میخونم چون خیلی ساده هست و چیزم نداره چند دیگه بیشتر لازم نیست برای آشیارم چون قده به دست گیرد بازار بوتان شکست گیرد من از روی این نخونم هر بر پاشت بوتادم به زاری ایا که دست گیرد بر بحر فتاگه هم چون ماهی تا یار مرا به شهست دیرد هر کس که بدید چشمه او گفت تو نه که ماست دیرد ماست چشم چشمش ماست دل او تمچه جا حافظ جامعی زنه ی علاست دیرد امراین رو که حالا ما در ارتوی نیست که حال تیرون برازان شیراجی ها رو نیستم هل تیرون قده هم این تو عویز قد میارم مگم خواب قده قده معنی کاسه بود بوده جام میبوده که یه خورها و چرافیش میخونده ظاهران مثل که جام فلزی بوده قده بدلچینی یا چینی یعنی گلی بوده سواه جام قده نور و نه خوشیده ازار وچگان را افتاب زده یارم چه قده بده اصفیت چون شراب بگیده قیده هست و گوی ها شیازی مطلب میدونن الان الانم الان هم احلی شیاز بگیم قده اون معنی چیزی که توی اون هست نمیدونه من اون معنی نمیدونه بعد قده یعنی کاسه که جام جام که پیمانه، پیمانه شراب منطقه گلی بود جام فلزی بگه اون گرید یا جام یا بلورم میگه اما فلزیش به این دلیل که میگه که شیع صوفی گولی بشین مرقب و مرقب خوار بخش اون زخط تحقا به نه خوشدوار بخش اونجا میگه که آخرش میگه ساقی ساقی چو شانوش کند باده استبول یو جام زر به حافظی شب زنده دار بخش تو همون زر تلاسه بلیز به هر خال بعده پینانه شرابیارم چون قده به دست گیرد بازار بوتن شکست گیرد روشنید فقط کلمه بازار بگم که بازار تو انجانهارای مصری فرنگ انجانهارای مصری مال مال مال هدایت و زغولیخان هدایت بوشتید که بازار یعنی باز آر یعنی میریم از اونجوری چیز برده بیار هر <تصفح> بازار, بازار. یک کلمه داریم در گیلان یک جایی هم هست واجار یک یا افادی هست میگن یعنی واجارگاه واجارگاه صورت دیگریست از همین بازارگاه واجارگاه یعنی بازارگاه اصل بازار بوده هوا چهره. این سیره که زیر سیلیم میزنیم یعنی چی؟ آبا چهره یعنی باهم چریدن و میدونی <متصفح> که بازار اصلا اولیش بازار مفرایه بوده. جنس هم از آرزن سیستان خود بوده، بول نمیده. الانم میارن تاعتی هر چیز ده هم میارن ده هم آرز. خون بازار. یعنی باهم چریدن. آبا چهره. یعنی با هم چویدن، با هم زمین با هم با هم این عواج شعر شده بازار در همه، در همه دنیا هم هست، لغت در همه دنیا چی؟ بازارگاه یعنی جایی که درش بازار منعقد بشه. بازارگاه یعنی محل بازار. چون بازار که خودش مثلا نیستش که بازار یعنی با هم چریدن. باید جای باشیم چون جا داشتم بازار، بازار. جای خیلی صفاییه. یارم یعنی. بازار شکستن، شکست شدن بازار یعنی کساد شدن بازار. یارم چقدر هم به دست بازار بازارو بطن شکست بر پاش کتادن بزاری؟ آیا بودن که دستگیره؟ دست گرفتن لنیه مهربانی کردن محبت کردن و کسی رو از یک گرفتایی نجات دادن، گیرن در پای رو بفتدن آیا ممکن که دستانو بگیره؟ بحکیه دست کنه؟ هر بحر هر صد آدم چون ماهی تایار منو به شست به شست کلاغ ماهی گیری شست کلاغ ماهی گیری هر کس که بدید چشمو گفت تو مهتسبی که مستی را یعنی چشمت مست اولا مهتسب هم یعنی با درست کسی که معموله اون معمول دولت این اینکه ببینه که خلاف شر انجام نمی‌دی. یک کتابی عربی کتاب خیلی داره یکی باقی مونده بود به نام معلم القربتی احكام الهسبه. کتاب به نام معلم در احکام مختصری. که شرایط مختصر چی باید بشه. و وضعه های تو چیه و چجوری از تقلبا و کم فروشی، نمیدونم ساعت محبر، نمیدونم زمین زیر این کارهایی که به حدود شهر داری الان تقلبایی در مواد قضایی نه همه وضعه متصل کنه بگیره و این کتاب ترجمه شده به فارسی، دوست عزیز بنده و همکار بنده و همدرس بنده دکتر جعفر شهر این مداتی رئیس دانشگاه ترگیت محلیان بود این کتاب از عربی فارسی ترجمه کرده و اسم فارسیشون نمیدونم چی داشتن حالان یادم نیست ولی اسم عربیش محل مل قربه اصلا عربیشو خوندن کتاب خیلی عالی بود یعنی کتاب یگانه است هیچ کتابی در این زمینه نداشت بود و این کتاب و این کتاب سواهد اجتماعی خیلی زیادی ازش به دست میاد اصلا که مثلا سنگ های ترازی رو باید کنترل می یعنی که سنگ کم باشه. بعد دولت این سنگ رو سنگ رو می اون که بازه خیلی سکی خود رو با شیشه بحثن سنگ های شده گرم قیمت رو جواهرات این ها رو تلاقناق سرس بزن کم باشه خیلی می شه آخر سر بگه ای سکت ها کلی کاسی <تصفيق> این سنگه رو با شیشه میریختن با بولیر که دیگه کاش نتونه و نمونه این سنگه رو در دانشگاه استاد تازبورد دیگم پیمانه همینجور که مثلا میگه رت اینا رو دولت دروتی داری میگه ده که اینا کم خوب شد اینا پارای بره فقط مردم آزاری نبود درهای دیگه ای هم بشته و اینا کتاب معلوم غربه هست جعفر شهر گفتم برای اینکه اگر خواست این کتاب گیرگیری دیگه اسمش اسم شهر هست بعد هم احکام مختصری هم هست من نمیدونم از این شهرداری بو یا فرسی شو کشت و این شهرداری برای حال ترجمه فارسی معلوم غربه من علوم یادم نیست، من اون تاریخ ایستاب حدودن به اقل این طور تحقیلی که معلوم کرده به طور تحقیلی که قطعاً معلومه بعدم این ها های شهرعی بوده اینا خیلی تحقیل نمی کارده مختصری با تطبیق اوضاع هر جاهای مختلف که محصولات فرمی کرده، آروهرها فرمی کرده به چطور اینجوری که برای وضعه هم تحقیلت های اینجوری بکنیم، مثال اصول یکی بگیدید، جامعه هم تا دونی سال پیش تا وقتی انقلاب سنتی تا اون جامع هست تکیت بود یعنی هزار سال یه صورت زندگی میگی میکن قهبای سه هزار تا به همون صورت بکنه چیز این فکرین این عوض کننه هستو خب، هر کس که بدید چشم او گفت تو محتسبی که مصد دیرد یعنی چشم یار خورنم دل اون کمچه و حفظ که, که دکتر خیلی علاقه داره اینکه برای آدم هر جا میاد اون بذاره الان اینجا ما کنیم نسخه و نسخه, شیش نسخه و هشت یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش نسخه هست نسخه هست دل اون که از حال رو ماخذ وجه خران دل اون چه برای کی رازش میده که ان که ارزش نمینماید بیس چه این کار کیا جا ما نہیں چا برحال اینکه آن ضمیر ام هست ضمیر اشاره است ان که دائم حواس سوختن ممنجر کاش میآد از دور تماشا می اون کلن ولی به چند دلیل دوست داره عدد متعدد است بر همین که اکثریت نصاف مثلا ان که بوده کرده او که اینجا هم یک همینجا هست هم که همچه حافظ جام زمه اله او که همچه میده شیش ساعت که کنم که می اشاره به یک ای قرآن که اگر من الان چیزشو کلمه بی کلمه خاطر ندارم ولی آیه و هر حال این است که میگویا که خداوند از همه افراد بشر از روز اولی که پیدا شدن تا نوز آخری که باشن قبل از این که متولد بشن برحالا ذر بودن یعنی به ذرات، ازشون پیمان گرفت و بهشون گفت الستو برفت بشن خداش من خدایش آنیستم قال و فلا رفتن چرا و نیگوید که علت که کفار مستعد عذاب میشن به جهنم میرن برای این است که اون پیمان روز عزل رو مراحب مدهد و این روز علست روز علست یا جامعه می یعنی لذت هم کلمسدنه و خدا که خدا با یکی که اینا گفته علاستو برد بکنم گفتن بلا و از اخ از رب من دنی آدم من من هم برای ظهور هم زوریت هم قال علاستو برد بکنم قال و بلا آیه بسید صد و از روی انعام رو برم از در بیچه من به زید درست ندارم و الان چیزه این آیه نردو علاستو خود شادست بکنم اینونا خیلی مزیمون در شعر فارسی داریم سعدی در باب عشق مستی شور میگه خوش آ وقت به شوری بدان اگر ریش مینند وگر مرهنش گدایانی از پاک شاهی نخور به امیدشن در گدایی سبور و مادم شراب و علم بردشن اگر ترک مینند دم بردشن. چه چه چه بعد میگه علست از ازل هم چنان به گوش به فریاد قال بالا در کرد یا همین محفظ یه که که به پیم همی کشی شروع شدن روز علست الان میردن مطلب و پیمان و صلاح از من مست مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من ماست به پیمانو کشی شهره شدن روز و این که این رو به پیمانه و به نه و از اینا میکنن یعنی شادی و سرخوشی که از مخالمه و حضرت هر ممکنی نسیدی بنده بشید. دل آن که همچه حافظ جامی زمه علم سید. یعنی من بر اون پیمان روز علم باقی هستم. و قالوگلایی که گفتن زیرش نیزد. این روز علاستونه یا علاستوجام و علاستونه نفا همه از این جهتی چی؟ علاستو یعنی آیا نیستم من و علاستو خلاصه یعنی مخطفه علاستو برابت کن علاستو برابت کن یعنی آیا نیستم من خدای شما قالو فلا فلایکی یعنی میگن این چرا هست؟ اون شاگیی که حاصل میشه قرآن آدم از مقالمه با ذات حق او رو شرفتش میگنید. ازل یعنی آغاز. بیاخذ. ازل یعنی در روزی همین زمان خواهد نشد. ویدو خدا این عهد و قیمان از آدم که در حالا ذرات تقه بر علم خدا وجود داشتن فکرد. نه خیلیم، ازال یعنی آغاز، ابداً یعنی بی انجاب و ازال یعنی وقتی زمان ندارد، اگه فرج کنیم تو همه چی ده خدا خرف کردی یکی از چی خدا خرف کردی، زمان نبیدیم ازال برای ما موجودات برای ذهن ما قابل فهم نیست که زمان نباشه چی تو میشه برای اینکه ما نمتونیم بفهم، دو چیز و بی دو چیز هیچ چی نمتونیم بفهم هیچی زمان ایک نکنیم میگیم آقای بالا آسمان بود؟ فلان کجا بود فلان جا کره زمین از کی بوده؟ فلان کجا است؟ بین بین مریخ و ظهره. من هر چیزی رو فکر من بدون توی زمان مثلا چیزی تو ذهنم نمیگونم این تصرف در ازل یعنی روزی که زمان نبوده ما یه حرف من لغلغه لسانه میگیم یعنی میتونین فرض کنیم یه روزی باشی که زمان هم نبوده اما این که ذهن واسه نمتونه بریم یا میتونین فرض کنیم که مکان نبوده یه وجودی باشه که توی مکان نباشه هم باشه هم نباشه هم دینشه خب اونه به زبینی میتونین بگیم اما تصورش نمتونی مکنین ما فقط میتونیم تصور چجای رو بکنین که مقید به خیلی زن هم و این مطلب خاند گفته ها که آدم وقتی می‌خواد تفکر بکنه باید اول ببینه که مغزش سلاحوت تفکر درباره این چیزی داره یا نداره بعد یه مغز آدم فقط می‌تونه درباره چیزهای تفکر بکنه که دو تا شرط هست دو تا زنجیر بهش یکی زمان یکی مکان و هر باید این زمان و مکان تصور چیزی رو در روشن نمتون بکنه البته هر چیزی که زنجیر زمان خب پیش خود پاس این اقلیم زدن رو میرسوندی این چی که خب ارز کنم که چارپنگ دیگه مونده و من نیست که بازم خودم بخونم بهتره نه غذا فقط می‌خونم، اون غذا رویسی خیلی هم باشکار داریم و خیلی هم نفصله دلم جز مهر محرومیان طریقی بر نمیگیرم زهر هر درد میده هم پندش ولی که این درد میده خدا را ای نصیحت گو حدیث از خبت ساخی گو فرناس های گست حدیث از مطلب رو میگو که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیدیرد سراهی می کشم پنهان و مردم دختر عجب گر آتش این زرد در بختر نمیدیرم من این دلغ ملمع را بخواهم سوختن روزی که پیر میتروشانش به جانی پر از آن روی است یاران را با بامه لحلت که غیر از راستی نقشی در این جوهر نمیدیرم نصیحت خونگ رندان را که با حکم غذا جنگه است دلش پس تنگ می‌بینه. مگر ساغر نمیگیره میان گریه میخنده که چون شام اندر این مجلس زبان آتشینم هست لیکن در نمیگیره من اون آینه را من آن را روزی به دست دارم سکندر و اگر میگیرد این آتش زمانی ور نمیگیرد چه خوش سی به دلم كردی بنازن چشم مستترا که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمیگیرد سخن در احتیاج ماب و استغنای معشوق چه سود ای دل چو در دل بر نمیگیرد، خدا را رحمی ای که چو در چه سر تو دری دیگر نمی و بایی دیگر نمی ببین شعر دیم ز شاهنشه عجب دارم که یا حافظ را چرا در زرد؟ آه دیگه حاصل زیباته. خب. بله. آرزو کنم که خیلی ان دوشخفلا بشه. سوالی می‌کشم که ما مردون دفتر انگار نه حفظ، حفظ قرآن بود دیگه. مرادش از دفتر قرآن. دیگه من شیشه میز رو عین می‌برم، مردون دار جلوی ندارم قرآن می‌ذارم. تا چه چیزی شه گفتن که آتش این ریاکاری در دفتر نمی با تاید تاید و خیلی، خیلی جالب جالبیست و نمی کنیش که که بارش افرسلی که با. خودش که نمی نه کسی که رندان نسیت می کنی کارو به برکه میگه که روز ازل من رند آفریدن اصلا حالا میگه نصیحت میکنه بیخورید و به بی آب در آون میگه به حکم قضا و میخواد جنگ کن بعد پارش هم کارش هم نتیجه ممیده بیگه که دلتنگی خیلی ممیدی ساغر نمیدیره بلاش پس تنگ میگیره اگر ساغر نمیدیره